حکایت توطی با زاق در قفس کردند و از قبه مشاهده او مجاهده می برد و میگفت: این چه تلعت مکروه است و حیعت ممقود و منظر ملعون و شمایل ناموزون یا قراب البین یا بینی و بینکه بو علی الصبح روگ تو هر که برخیزد سباه روز سلامت بر او مسا باشد سباه روز قیامت بر او مسا باشد و دختری چو تو در صحبت تو بایستی ولی چنان که توی در جهان کجا باشد عجب که قراب از مجاورت توتی هم به جان آمده بود و ملون شده. لاحول کنن از گردش گیتی همین نالید و دستهای تقاون بر یکدیگر همی مالید که این چه بخت نگون است و طالع دون و ایام بوغلمون. لایق قدر من آنستی که با به دیوار باقی بر خرامان همین رفتمی پارسا را بس این قدر زندان که بود همتویلی رندان. ولی تا چه کردم که روزگار به عقوبت آن در سلک صحبت چنین ابلهی خودرای ناجنس خیر درای به چنین بند بلا مبتلا گردانیده است. کس نیاید به پای دیواری که آن صورتت نگار کنند، گر تو را در بهشت باشد جای، دیگران دوزخ اختیار کنند، این ضرب المثل بدان آوردم تا بدانی که صدچندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است، زاهدی در سماع رندان بود زان میان گفت شاهدی بلخی گر ملودی ز ما منشین که تو هم در میان ما تلخی جمعی چو گل و لاله به هم پیوسته تو هیزم خوش که در میانی رسته چون باد مخالف و شو سرما ناخش چون برف نشاستئی چون یا باستی.